الحمد لله العالمين عليه و سيدنا آل رسول الله و الطيبين الطاهرين المعصومين. على اللهم يا الله من شد و اصحاب از و, و کلام مسائلی رو در این کتاب مطرح کردن خب روایات و آیات اونوارکند در باره ریبت هست و مجموعه روایات یک مقدارش برمیگرده به های تجسم ریبت یک مقدارش برمیگرده به جهات اخلاقی یک مقدار از روایات چه در مصادر ما چه در مصادر اهل سنت همان روایات مصادر ما بیشتر برمیگرده به جهات تفسیر ریبت و حقیقت ریبت در فرق بین غیبت و بقیه اموری که به اصطلاح خودشون جزو آفات لسانی باید از تحبیر از تو احیاء العلوم هم جزو آفات لسانی اوورده قضالی به اصطلاح این در کتاب, در کتاب کنزول امال هم آفات لسان رو اخلاق افعال خاص لسان رو جزا کرده از مطلق افعال مضمون الان که به مکان و حدود غیبت و درد به اصطلاح موارد استثناء و بعد آثار دیگری که داره آثار فقهی و غیر فقهی اینا مجموعه است که در بحثه فقهی آمده البته نظر مرموم شیخ انصاری که قیبت رو در اینجا برده با عنوان مکاسر محرمه یعنی اگه خدای نکرده کسی پول بگیری که قیبت رو کنه این پول حرامه مراد شیخ اینه طبعا مطلب درسته اما تو روایات این نیامده یعنی ما روایت نداریم که عجر و غیبت هراموند و صحبتون این طور ما نداریم کلمه اجر رو در غیبت نداریم چون متأثر هم نبوده مردم مفتقی غیبت میکنه توی یک روایت هستم اصلا غیبت میسی میوه شده نقل مجالسشه الان که ماکان بدون پول هم غیبت میکرد این مطلب درسته اما کلمه عجر تو روایات وارد نشده درست است این مطلب درسته گرفتن عرج این عمل محرم جایز نیست و اون باطله لکن توی روایت دکت نشده جاتی دیگری آمده که مرحوم صاحب سا وسائل عرض کرده و از خواب ما در کتاب حدیث و عباقل اش اینجا هم مرحوم شیخ انصاری به مناسبتی توی این بخص مکاسب محرم آورده در این کتاب های اخیر ما مثل منحاج و ها هم, هم به یک مناسبه در اول در اشتا تق در ذیل کبائر چون اینا داره که مثلا مجره به عدالته در ذیل کبائر غیبت و اونجا آوردن تو من و صالحی اگه نگاه بفرمایید منایل غیبت و شرایطش خصوصا که توی اشتراط تعلیل اولی کتاب آورده خب هر کدو به مناسبت خودش رسول باب شهادت چون شهادت این رج میشه اونم به مناسبت فرض کنید که مکاسب ایشون آوردن، به مناسبت احشات و معاشرت اون آوردن این را که به رو روایات زیاد دیروز از کردیم اون مقدار رو که مرحوم به این کتاب مرحوم ها برو جمع خودش مقدار زیادیه و خوب رو روایات کار بشه خود اهل سنت مدت ها کارهای زیادی رو روایات نکردن اخیرن ادهشون انصافن را افتادن و خوب در زحمت میکشن و این کارها رو ما هم انجام بدیم به این توسعه خیلی خوبه این یکی از این مواصیت درصل از احادیث صحیحه 80 رو جمع کرده 13 جلد در صورت قطوره و سلسله از احادیث ضعیفه 17 جلد که مجموعاً 30 این راه هم راه خوبیه این راهی هم که انسان بیاد مثلا موضوع بندی بکنه در هر موضوع استیعاب بکنه روایات و مسادرش رو مخصوصاً در این مساله کلام حتی که باید مشغول بشین این کار کوبیه فرص یا تقییم از تراس الامامی تراس غیر از ربارته تراس این یعنی مجموعه اون چیز در کتاب های ما موجوده حالا میخواد اصلش به سنی برگردی یا از خود ما باشه این کار کار خوبیه. چون ما الان در کتابهایی که به اسم خود ماست مقدار زیاد داریم که ما اهل احل سنته در صورت در طرق اهل بیت نیامده اما در کتب اهل سنت هست اینا بررسی بشه یکی یکی بررسی بشه، تعیین بشه، ارزیابی بشه. حتی اگه به زبان فارسی هم نوشته بشه برای کسانی که محال منبر برن، صحبت بکنن، بنویسن. اصلا کل روایات باب غیبت با دسته‌بندی، یکی آثار غیبتگی، تفسیر غیبتگی، ماخذ و خصت و استثنای در این یکی کفاره غیبت. اینا رو دسته‌بندی بکنن و کل روایاتی که در میراث ما می پس بعضی تو آن جامعه اینا رو بیان اونایی که از میراث اهل سنت در مسأله اهل سنت استخراج می‌کنن متون لفظیش قسمت رو قسمت‌های لفظیشو متنش رو دقت بکنن خیلی به نظر من کار خوب و مفیدیه اون راه اونام که خیلی خوبه این راهی برای است که ما موضوع بردی بکنیم به نظر من این طور میادارم. به نظر خودم ارجو کنیم اگر بخیرن فقط با غیبت و غیر از ایذاء دیگه روایاتش رو جمع بکنیم و متون و مصادر و اسانی و ارزیابی بهشون اصلا شد فرق کاتری بعد یک جلد بشه. توسط مرحوم شهید ثانی هم کتابی در غیبت داره کشف ورودیه احکام غیبه چاپ شده، کرا هم چاپ شده. اخیراً با رساله‌شون چاپ شده ایشون از کتاب مستقلی هم داره. اما خب اون کتاب خیلی طور مفصل نیست. این ترتیبی که من عرض کردم خیلی مفصله. مثلا فارسی هم نوشته بشه، آخه که میخواد حتی در سطح دانشگاهی هم کسی نگاه بکنه میفهم که این حدیث صحیح یا صحیح نیست یا اول اختلافی است به نظر درجه قابل اعتماده به نظر درجه قابل اعتماد نیست ما چون دیدیم حالا بعد یادش بخونیم راه برای خوندن کمی اجمالاً متحرز بشیم خیلی نمیخوام فعلا توی حدیثش زیاد معترتون بشه بیشتر دو میخواد روی مسائل فقهیش باز بشیم که محل کلامه باشه عرصه که خدمتون که اون وقت مقدار زیادی از روایات ما حتی بعضی تا اینها اینا ها ریشه در اهل سنته و اگر بشه از برکون ریشه بررسی بشه که خود اهل سنت قبول دارم یا ندارم. سندش پیش خود اهل سنت صحیح هست یا نه یعنی وارد این بحث بشین خیلی طولانی میشه یعنی خیلی از بحث ما خارج میشه من فقط برای این که یک نوع آشنایی پیدا بکنید یک مقدارش رو به اصطلاح در اینجا متعرض میشم دیگه و خصوصیاتش که این طولانیه ما به همین مقضایی که عرض کنیم اکتفاق میشه انشالله تا اللہ بعد خدا آهان با دیگه مراجعه بفرمان مراجعه بفرمان من این شد که بتوانم کنم تا مردی بی حاله انجام احجام بدم قدمت آهان باشه ارز کنم که من برای اینکه که بلگرد به اصطلاح از نکات روشن بشه ولی که فقط در اندازه روشن شود چون نمیخوام بحث به تفصیلش بشه برای اینکه بعضی از نکات روشن بشه یک مقدار از روایات اهل سنت رو در حد سرک خوندن حالا یه در حد این که اون مصدر توش هست اشاره اجمالی که مثلا این مصادر مسادر قبی نیستن که بیشتر روایت رو می که تأثیر گذار در روایت ما شد تو مسادر ما آمده حالا یا به طریق اهل بیت یا به طریق اهل بیت در اونجا پیدا شده اصلا که در این آیه موالکه هم توی که از کردم در سوره حجراته ولایخت هم برزه کن آیه رو خوندیم یا آیه هردین اما منون اشتنه و کفیرم منوند ان بعدا و لا بعضا من و الله ان الله این در این کتاب درر المنصور جلد پنج درر المنصور جلد 4 استخراج کرده بعد من همه چه نمیخونم اون جاهایی که محل کلام و اخرج ابن المنظر این ابن جورج البته عادتا این کتاب روزوی این مستقر روزه مسادر درجه اول و دو دوشون نیست حالا من سندش رو ذهنم نیست نمیتونم بگم اما خیلی نیست فی قولی ولا یخن بعضا کن قال ابن جورج ذهنم خیلی سند دوشنی نیورده انها نظرتی سلمان الفارسی این آیه مبارکه شعن و زورت سوره یه حجرات و شواهد خود سوره هم میکنه کلن مدنی است و جزو صبری است که مثلا یا ایامی بره تبلیغش برای مردم بکنه چون جاعت اخلاقی اصلاح مؤزمش در این سوره آمده خیلی جاعت اخلاقی اساسی رو دارد نظر نظرفی سلمان الفارسی حالا گویاد سلمان در سفری بوده اینجا نماشه با دو نفر قسم ن بعد یه روزی خضا میخور بعد میخوابه رقده فنقه خود باید مثلا شما خور خور کردن به سباب ف زکر رجلان دو نفر اونجا باش بودن اکله و رقاده و که این خورد و خوابی. یعنی سنمان را قیبر کرد اسم این رجلان نبوده بعد خوباله هست خلیفه که نیستن اول دو میانن ما خلیفه بودنشون قبول نداریم و اخرج ابن عبی حاتم حاتم ابن عبی حاتم این هم جزء مسادر خیلی در جمعه هم بشونید انه که سدی به اصطلاح در اینجا جزوه تابعینه ان سلمان الفارسی کان مهر جلیم پی سفره یخدم ما در اون خدمت میکرد و ینال و منتعامه ما و انه سلمان نام یومن فتاله برو اون دو نفر مطلبی خواستم فلم یجدوا دیدم نیستش خزر اول خبا شبو خیمه خیمه رو بالا دادن فر و قالوا ما یورد سلمان شیء علیه راضا سلمان فقط بیاد اینجا غذا بخوره بخوابه کمکی بر ما نمی‌کنه غیر از علیجی اداتعام محدود و خبا مزروع غذای آماده من آماده و خیمه‌ای که زده شده فلم ما جایز سلمان سلمان که آمد بین پیش اونها ارسلاح الى رسول الله الان ما بگم که در خود کلمات آمنه هم موجوده توی مطلب در روایت ما آمده در برد جا آمده اصلش رو بگم ارسلاح الى رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم یطلب و لهم ها ادامه گفت برو پیش رسول برمایه خورش که بیار مثلا نان داشته خورش بیار بله فنتلق فعتاه امتلاع قارشو در آمد بیرون به دونجا پر جا رسول الله فقط یا رسول الله به اصلای اصحابی اصحاب من لطعدمم این به معنی ادام فرست یعنی خورش فرست دادن امکان امدر قال علیه اصحاب ما یسنام اصحابو که به ادام اینجا ادام داره به این خورش چی میخواد قدع تدم اینا خودشون خورش خوردن. فرجه سلمان فخبره همو یا خبره همو سن طلب اینا آمده این دو نفر پیش رسول الله فرطای رسول الله صلی الله علیه و آله سوال کردند به هر ما عصبناتا آمنا مز نظرنا ما قضا نخوردیم شو می قضا خوردیم قال انكما قد قد تدمتما سلمان شما گوش سلمان رو خوردید که از یعنی این خوردن گوش بود به قوله شما فنزلت ایوهب احدکم ان یاکل لحم اخیه میت اینو گفتمید این به عنوان شانه نزول این آیه در اینجا هست البته در اینجا داره که و اخرج ابن عبی حاتم ان مقاتل اینم از تابعین فی قولی هی ولا بعض کن بعضا خالن نزلت فاضلای فی رجل کان یهدمون نبی که همون سلمان حالا یک جشک شده اسم سلمانه میبرن دو دونگر نیبرن اینجا باز اسم سلمان نوردن عرفت به بعض سحابت اله یطب و منه ادامه س من ایامانه فقال و له نهول و مخيم و مخین آدم وخیر سند این راجع به یک نشهزولی او در اینجا این صفحه 94 بود در صفحه ن اخرج جا عبدالنور حمید عن اکرمه رفع, اکرمه لم بن رفع علی حدیث امتن اکرمه لامیوزدگین جزو طبقه قلام عبداللهم هست رفه رفع حدیث اهل نبی صل الله علیه و آله سر نهول حبه قوم فقال لهم تخلل خلال بگیریم لای فقال القوم الله یا نبی الله ما ما تا ما تا امنا علی یم فقال النبی صلی الله علیه وسلم اینوالله اینی لعرا لحم فلان بین سنایا کن اینم من میخونم چون اینکه این متون ما آمده من هنوز اون گوشت بین دندان های شما ببینم سنایا چهار دندان جلو رو میگه بین سنایا کن و کانو قد اختابو اسم نبردن سکوت کردن اینم یک رواید و اخرج زیاء المقدسیف مختاره است. تو که اینا جزو مصادر اصلا درجه معتبر اهل سنت نیست و چارشونه. کان العرب یخد و بعضا بعضا بعض در اسفار و کان معاوی و بک و عمر رجون یخد ما در اینجا به عکس اسم عذکر عمر برده اسم اون طرفی که یخد ما نبرده. تو اون روایت اولی اسم سلمان برده اسم اون در رفیقش نبرده. اونطوری که چون فرضاً واضح شد که قصه چیه. فنا ما بله. فاسته ای قضا خابیدن ولم یهیه الهما تا آمن سلمان بر اونا غذای آماده نکرده بود بله فقالا اینهاد النوم یا اینهاد نوم این, این خواب آدم خابالو روزه فا ای قضا فقالا اعترسلال فقال لهو این عبا بک وما دید رعان که سلام ویست از از اینه که یست از که نباید باشه یست ادمانه که باید باشه اشتبا چام شده فقال اینه ما اعتداما ای پیغم بایدونه قضا خورده خورش کرده فجا فقاله یا رسوله بایی شعن اعتدام رو چه قضای خوردی فقال به لحم ما و ولدی نفسی بیده اینی لعرا لحمین لحمهو بین سنایا کما من هنوز گوشتیمونو در بین دندانه های شما میبینم فقال استغفر لنا یا رسوله فقاله مرا فلیستغفر لکما لکما معرش من چه حدیثه بتونو تفسیرش خود دارم یک مطلبی هست که کفاره غیبت این است که اون شخصی رو که انسان ریوت کرده برای انسان استغفار بکنه ان شاء کرد که کفاره یکی که خود انسان استغفار بکنه یکی که استغفار له بکنه به الله از اللهم مغفرله این هم داریم طوریه باید یکی این که او برای انسان استغفار بکنه یکی این که استغلال به خوده قصد من از آن مقدمتان ارزمم که ذهنتون آشناب مرا شما در سوز اون قلیت این است که دلیل بر میخواد دکتر و خیبنانتا ارز بخنم که خیلی از مطالبی که در روایتی و در خطوه آمده اینا سوابقه در روایات رسول الله داره بله در یک روایتی ها که نگه نمیخوام همیشه بکنم شه بخنم و ترمزیی برده اله آخریهی برده باز هم داره که استغفار یک حدیث دیگه هم باز نرم بکن اونجا هم باز اسم این دو نفر رو برده اسم در این حدیث دیگه سندگی که من فیلن دیگه نمیخوام بکنم چون زیاده هر که من از مگر زیادیست مجموعا همین سه چارت هست این مطلب که الان روشن شد در این بابه در این جلد بیست جامعه الاحادیس اون دقیق بکنید صفحه 521 حدیث شما دوازده از بابه 119 مجمع البیان داره خب توضیحش هر معنی شد که این مطلب اصولا تو روایت اصحاب ما نداره به این صورتش تو مجمع البیان داره بله فی نزل فی رجله من اصحاب رسول الله اقتا با رفیقه و با و سلمان مجموع بیان این داره به این صورت دقت چند مطنیش هم با اونا فرض کرد اینی که من میگم مثلا ببینید و ریشی آبی بکنید. مثلا این یه بایت مجموع اون ریشی هایی که در استل... مطونی که در رویت آم آمده در زیل اینجا بیان بعصاه الى رسول الله لیعتی اله همه به تا فبعث همون الى اصامت ابن زی اینجا یک اضافه داره که تو اونها نبود البته تو یکیش داشت که اینه اون بخیدون احتمالا تفقیق شده اگر راست باشه اینجا داره که پیغمبر فیستاد میشه اصامه و کان خالد رسول الله علی رحلی چون حالت اصامه خب بزرگ سده ایدامه رسول الله هست اسامه ابن زی فقال ما اندیشه ای اون فعاد علیه ما فعالا داخل اصامه که خوندیم اینه رجان بخیر قال سلمان لسلمان لوبه اشناه الابرن سمیه ها. این سلمان این بد بیبرکته که اگر ما این رو بفرستیم چای چایی چا خوش میشه لغار ما آب چای میره پاییم سلمه یا انطلاع آیت اند اصامه یا تجسس هم کرد این تجسسوه لایختب با هم دیگه بله بله فلدزا در اونجا داره که ما تناولنا یومنا حالا لحمن قال ولل ضللتو ولنتون ولل به کس ازاد مثل ال تاکلون لحم سلمان و اسامه فن از آیه دقت کردیم باز دو مرشمه داره در لب اللباب نعر رسول الله به ناس بن اصحاب ها گفتم تخلسوا قال ما اکل نقال بل من را نرا بكم فلان صدقه فی این تعبیر رو هم در اونجا به اصطلاح وارد شده ارز کنم که ارز کنم ها شده درستانیه اون مطلبی که گوشت رو من هنوز بین های شما می‌بینم، این هم ما داریم حالا بعد می‌خونم، این هم ما تو لوازم ما داره که اونجا داره خدرت لحمه بین سنا. من هنوز سبزی اون رو بین دهان شما می‌بینم، در بین دندان های شما. حالا بعد می‌خونم نسکی. خب یه مرداب یه از تو آب در علمانه نفیه میخوره خب یکیشه که الان قصه ای این دو نفر بود در روایات ما این در روایات ما هم چون آمده بعد متعرضش میشه در روایات ما از پیغمبر اکرم تفسیر غیبت نقل شده از امه ما هم آمده در میان مسادر عامه، توی مسادر صحیحشون هم آمده مسادر درجه دوست آمده ببینید یکی از مسادر اینه قال انیقول رجل منخلفه هو کدا این از این کلمه منخلفه معلوم میشه معیار در قیبت این است که پشت سرش باشه و بعد میگه یوسی او ثناه یعنی به اسطلاح حرف منی راجع به این بزنه بله، باز داره که ذکر لنا ان الغیبه تلقر اخاف به ما او و او به ما این معناش اینه که انسان پشت سر کسی اون چیزی که ایده بگه اینشالله شاء الله ارزش یکی از مسائل مشکل واقع غیبت همین چون ممکنه یک مطلبی رو مثلا عیب نباشه در نظر عرف عیب حساب نشه بوده قصد بکنه اما این آقا نمیخواد شناخته بشه به این سفر ای هم نیست. اگر گفتیم تذکر اخواب به ما یک ره یک ره این مطلب رو پس این نکتره که من میخونم، این میخونم یه آشان شما آمادگی ذهنی پیدا بکنیم که غیبت به معنای بیان عیبه یا قیبت بیان چیزیست که انسان خوشش نمیاد ولو عیب نماشه اصلا عیب هم نیست. و یکی از عجایب کار اینه که معلوم میشه این اختلاف در حقیقت حتی به کتاب لغت هم سرایت کرده این مشکل کار در بگید اینشان عبارت شیخش ها در مکاسب شیخ نقلی کرد بعد از علوم قاموس نقلی که سه ها نقلی کرده آبهو ای آبهو اینا کلمات همه روش حساب شده است که همه روش نقلی کردن این مطلب در اساس این بوده که قیمت آیا خصوص به یا نه غیبت مخلبیست که این علاقه نداره دوست نداره ایوه نیست خوشش نمیاد کسی این مطلب رو بگه علمی بگه بس به این کار کلش نمیاد معذاله گفته بشه آیا اینم حرامه اینم آثال غیبت داره یا نه این بله بله بله انقدر مجبور بود بله. بعض در روایت داره که بله. این روایت تقریباً جزء اصحاح سحی صحیح روایت صحیح شده. ابن ابي هريره قال: يا رسول الله از ما هم داریم چون غیبت در آیه مواره کامله آمده این سوال شده که ایمه می قال ذکر که اخاک به ما یک ره این چیزی که قال ها رسول الله عرائل امکان فی اخی معبول امکان فی اخی معبول اگر راست باشه اون واقعا همین سفر داره قال امکان فیه ما تقول فقط اختبسر و انلم یکون فیه ما تقول فقط به حتی این بختانه این رو چون منخون در این تقریبا شده صحیحشونه ولیکن به اسانید متعدد و مزامین متعدد داره مثلا بله قال رسول الله ابن نرقیبه ارتذکر المرق به مافی دقت بکنیم ارتذکر المرق به مافی این اصلا توش یکره هم نداره این هم نداره اگر چیزی درش هست بگی امدقت این خیلی اطلاق بگه بله، فقال اینم ما کنن نورا این نذوره او به ما لیسی قال ذکر بختار. بله، داد حالا اینم بازی که ادیان دیگر، کازایی که زمان پیامبر وارد شده، اینجا داره عن اکرمه این امرعتن داخلت علی نبی ثم مخلج. فقاهه از آیه‌یار الله ما اجملها و احسنها الله لعنت و ها قصره این کوتاه نبود. زن قشنگ بود مثلا البته اینجا اسم نورده نگه نگه شده که این قصر آیشه راجع به اون به اصطلاح حووی خودش صفیه که در اصمال خیبر بوده به صفیه بنت هویهی گفته بله لولا فقال هم نبی اقتبتی ها یا آیشه فقالت یا رسول نما گل تو شیعن هوده ها خب واقعا خب قدش میگه دیگه چیز که قال يا ايش اذا قلت شيئا بها فهي غيبه و اذا قلت ما ليس بها به ذهته ها فقرت يعني راح اين معلوم بشمن خب اين میخوام بخونم خب اصلا به اشکال عجیبه وارده دیگه چون خواهد بود که غیبت مثلا چیزی که مخفی باشه خب کوتاه کوتاه مخفی نیست که همون هم میبینن کوتاه قده خب به قرارداد حالا غیر از این که واقعا کوتاه قد بود این کوتاهی که مغصی نبوده من میخوام بگم که این کلمه رو چون به قصد اهانت و ایزا گفت یا به خاطر اینکه اگر او بفهمه تو به این زبان گفتی ناراحت میشه این کافیه برای غیبت این خیلی مهمه یعنی این واقعا یکی از های مشکل بعدا از واقعا ما مشکل این کلام صادقانه چون بحث غیبت انجام میشه باعث خارج اون وقتش هم گفتیم انصافا مشکل داره تو غیبت این مشکلش اینجا مثلا ذکرت رو اینجا پیغمبر میخواد همین که توی یک نباید داره که با دست اشاره کرده جدی مسخره کرد حالا اینجوری توش مسخره نداره برات این که با این که یک امری بوده علنی هم بوده چون ان خواهد الله شاهد اگه مطلبی علنی باشه و واضح باشه غیبت‌لاقی قیبت بلاست خب یه از این که علنی تر نیست معاذ رسول الله فرما قیبت کرد این کاری که انجام دزی غیبت با اینکه شاید بود عایشه مثلا جلو خود صفیه آیا نکتش اینه که چون جلو او نمیتونسته به یه خجارت بگیشده پشتش گفته ریبته نکتش این بوده برای او عذیت آوره برای عامه مردم یک امر واضح طبیعی که نباید مشکل آور باشه من یکی دو تا رواض رو میخونم چه از سنی چه از چیه برای این که ببینید واقعا یک مشکل تفسیری هم داره. البته بعض، بعضی, بعضی از کلمات نم. از علما نراد که حالا کلماتو علما شده میخوایم بخونه یک ربایت دیگه که خیلی عجیبه از این سندش در و از مسادر درجه 3 و 4 هره سنته چان به هرهیش بهدرز باشه که آیشه راجی به یک زن دیگری همین صحبت کرد میتونم جا دامنش بلند بود طبیلت و ذ فقام دبی سالاسا 11 از یعنی از دهان بیرون نداست. فلق ازا بعض ع که لن چیزی که گوش از زبان دا شما بیرون. با اینکه این, این وااضه بوده که مثلا دامنش رو بلند بوده از میکن در بیاان عرب ها رس بوده که دامن بلند بگووشزن دامن بلند مراد را مداری رو کشیده میشه. اینم داریم و این مضمور رو در چند جا داریم؟ که حتی اسادی بوده که مثلا غیبت کردن بله است بعد پیغمبر فرمود این کار یکی از روایاتی که به اسناد متعدد داره اونجوری نه احمد هم در مستند نقل کرده دو تا خاطر تعبیرشون تعبیر زیبایی است میکنن کنه که دو تا زرد روزه گرفتن بعد نزدیک مغرب آمدن کسی پدرش بود چی بود که و قیبت هم می‌کرد در روزه که اینها به اصطلاح قضا میخوان بله اون تعبیر رسول داشت به شک حالا میگه قضا یعنی به خونی که خورده از مردم فقال رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ان هاتاین صامتا اما احل الله و افترتا علی محرم الله علیه ما این دوتا از قضا امسال کردن که غذا حلال بود، میوهایی که حرام بود، افطار کردن، یعنی به نبودی که در عکس شد. صامتا، خیلی تعداد شدینیه. اینها تی صامتا، اما احلا الله لحوما و افترتا تا علاما حرام الله عليهما جعلت اهداهما اهل الاخره فجعلت او یا لهما نامس. آن وقت این زیر بنایی شد برای این که بگن علیه و تو فت و ساعه البته این بی زیر راست حالا از میگم که بله و بل این چند تا لوغاز چرا میگم خیلی لوغاز چون بنانید همیشه بخونیم چند تا لوغاز ببین مضمون اون قسمتی رو که الان ما خب بگیم اینه بله یک مضمون دیگه هست که در تو لوغاز ما هست المؤمن قال رسول الله المؤمن حرام علی المؤمن لحمه علیه حرام ان یاکل و یقطا به غیر و ارزقه علیه حرام ان او و وجعه عل... و او علیه حرام چیزی هم صورتشو و سنادش هم حرام یک روایت هم ما داریم که کسی بود که اومد پیش رسول الله اعتراف به زنا کرد راستجماعت داره که بعضیا اونو مسخره کردند اینم داره ما هم داریم که شما چونه من خرکمی به ادنه اون یرقمس و البته در روایت سنیا داره که در انوار جنت یرقمس و فیه ها داره توی بهش یمین که به حد بر جای کردن تو روایت اون داره یس و حفی ها فرق مهم اونی اسمه یس و ها یر و یرقمس بعد از روایتی که میخواهم به درد مانه نوشی بخواه یه بحثی خیلی معروفیه که هم بخاری داره هم مسلم داره خیلی معروفه و به یک مناسبتی هم سابقا آثارش رو بحث کردیم ک نامه رسول الله صلی الله علیه و آله تقدیم یا از و صاحبا شد درجه عجیبه برد برابر یک تصرفی در جایی کردن فقال انما لای و عزوان فی کبیره و دکو اما ما اما فکان یقتها بردم هست و هم بالآخر فکان لایت عذاب بدن با اون بعد که جریده اردن رو گفتن این عذاب تا ماذا میکنه از ما درخ میشه این هم یک نکته که در روایت ما هم آمده هم روش حساب بکنیم یک نکته بازی مسئله بسیار مهمتر در بابا غیبت رد در ریبت یعنی خود غیبت که حرامه سماء غیبت حرامه اگر بتوان از رد بکنه و رد نکنه اون هم مشکل داره من از کلام اونایی راجع به احادیثی میگم که تو روایت ماامله و تاثیر فقهی داره میخوام ریشارش رو arz بکنم اخرج البخاری بخاری فرع عدد عن ابن مسعود قال منقتي به عنده مؤمنو فنصر او جزاء الله بها خير در خیرم در دنیا و آخر، و منقتي به عنده فلم ينصره جزاء الله بهافه دنیا و الاخره شررا و ملتقى عقد اللقمه شر از اختیار مؤمن ان قال فيه ما يعلم ان ما يعلم فقط اختابه و فقط قال فيه ما لا يعلم فقط بهته فقط بهته بهتان است این هم یک روایت یک روایت دیگه که جنبه های تمثلی قیبت داره اخرج احمد انجابره من تو ما هم داریم به یک مضمون نزدیکی این من این رو که اگه بعد روحات خودون رو خوندید یه مزار رو اوشندتر داشتیم انجابره من عبدالله قالو کن نامه رسول الله صلی الله علیه, علیه و علیه و سلم فرتفع و جیفت منتنه بوی یه یک مرداری آمن لاشه مردار بدبو فقال رسول الله ما محاله ری این بومال کجاست؟ ها زهی ری هولدین یک ناز ده ده مشکل این به جسن مشکول قیبت این بویست که از اونجا بلند میشه باز از روایتی دیگه داره اذا, اذا وقع فر رجل و انت في ملعه فكن للرجل ناصرا را وللقوم زاج را جلو اونا رو بگیر و قوم انها تلا ح آیه اییوه با داکن بعد این هم یکی یک مطلب ینی که در عده از روایات آمده تو روات ما هم آمده متاسفانه سندش درست نیست خب خیلی سنگینه این مضن به عباس هم نووی ص الله سلام ان روا نیه فون و سبعون بابا هفتاد خورده اهل باور مثل من نکه همه فی الاسلام نستجربالله و در همون فی الروه اشد و من خمسن و سلاسین زنیه نستجربال و اشر و ربا و اربر ربا و اخبس و انتهاک انتحاک و ارض المسلم و انتهاک و حرمتی این به مزامین متعدمن یکی شوی بخونم برکه یکی محضرات خود رو که بخوام سابقه این بحث همبتی اینا در کتب احل سنت سند نداره باز از روایتی که داره در تمثل تمثل به تمثیل حالت قیبت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لما آی جبی به قوم لهم ازفار من نهاست در نونای از مثل یخمشون وجوه هم و صدور هم با این مثل با این صدور سینه و صورت خودشونو به حساب مجروح میکنن فقلتو من هاولا ها ای. قال هؤلاء الذين ياكلون له الناس ويقعون في حراذين اینم ما داریم مثلا من قرار می‌خوام که ما داریم می‌خوام سابقه رو که این بهتراجینه چون ایناری که ما داریم خیلی از تو مصادر بعدی ما آمده که از سنی گرفتن برای حدش باید مراجعه کرد مصادر اونها چون در روایت ما نیامده در بیاش که الان بله از جمله‌ی روایاتی که بله العنس اخرجه ابن ماجه سند روشی نداره انا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يصوموا يوما ولا يفترن ولا يفترن ولا يفترن ولا, يفترن ولا, يفترن ولا بله ولا کجا ولا يفترن عهد حتى اظهر له فسامن فاعلن ما انصر شبک شد جعل الرجل یجیل رسول الله و یه بود ظللت منظور تمام روز من روزه بودم فاعلن لی فلا اخترن فیعظن الله حتی جا رجلون فقال یا رسول الله این فتاته جهد دختر من اهل که ظلت ظلت منظور یوم سائمته فاعلن لهم و فلیفتر اینیو فلیفتر فلتختر بود باشه فاعلن انصر معاد علیه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سامتا و کیفه ساممن غل یعکل لهم اناس بعد رفت و اونجا بله بونه ها گفتان کردن اون به اسطلاح همون خوب که صافتی از بیرون بعد در زدش داره فقال رسول الله لو سامتا و بقیه فیهما لأکلت هم انا یک قسمیه این یعنی در دنیا به صورت یک تیکه گوشت فاسد همین گوشت فاسد در روز قیامت می آتش میشه این خیلی نکته لطیفی باز در روایت داره که بله از عایشه لایت هم از عهد و کن البته احتمالا اصل این مطلب به عایشه بوده که خود غیبت هم ناقض وضوئه آیشه میگفته لا یعطور از احمد کن منر کلمت خبیصه یا اولا حاله اخی و اعتراض از احمد تحامل حلال چون احلستان میگوند این کسی اگه ای گوشت پخته بخوره با روزوش نجیم بکنه وزوش باید باطل میشه میگه از این کار زشت وزو نمیگیرین از تحامل حلال وزو میگیرین چون در روایت داره که عرقی و تن بزر وزو و سلات و صبح من میخواهم ریشه هاش رو معروف شد که مسئله وضوع یک صحبتی بوده اصلش از آیشه باز از ابن عباس و آیشه قالا هر دو هر دو نفر الحدس و حدسان حدسون منفیک یک حدسید که از حدسی لبان و حدسون من نومک و حدسون فرم عشد الکزبو و الغیبه باز ابراهیم نخعی که از تابعینه قال الوضوع من الحدث و از المسلم بعض در خرالتی در مسایب و این عمره اینه این ابن عباس این رجلین سل یا سلات الظر و الاس و کانا سائمین نماز خوندن روزه هم دودن فلما قبل نبی صلاح قال اعید وضوعه کما و سلاته کما و امضیه فی سومه کما و امو یا یوم آخر زمین ها چی شد؟ که پیغمبر بیه ما رو سموزن که هم روزتون باطله هم نمازتون باطله هم, نمازتون باطله، هم, نمازتون باطله، هم روزتون رو با قضا بکنی این که الغیبت و تن قضل ووزو و سلات و تفت و سائر این برای این که چون تور آتما هم آمده همین مطلب تو آتما هم آمده پس این برای شما خیلی مفیده دری که وقت شده بریش این شد فردا که ریشه های اونچه که در روایات ما یا در مساد ما مهم نیستن رو ازاهل بهتم باشه. تو سااد ما آمده ریشه هاش در کتب ل صنته و معلم شد که در مقام نقلم اختلاف داریم با اونا برای تعریف مسائل اینا رو بری کردن فم قرار درافه من که رو گفتم فردا که دو سرهبار شما را محل کلامه. در احکام اونا رو می‌خونیم در وارد ان شاءالله فکر میشیم. بس